و آله قیبین و المعصومین و لحفظایم و سعبا عدائی و که یا که بران هر روز خارج خادش روشیم از برای توضیح مطلبی در روز آخر در آخر بحث اجمالا گفته شدیم توضیح در خنده اختصار را نر بکنیم بسی که در اینجا ما معترض این مواحصی مثل مغزمه واجب و اوحصی مثل مسئله نهر امروش مختصی نهری از زده مسائلی مثل تعلق عوامر به طبایر یا به افراد اینها به لحاظ غصولی به لحاظ قانونی به لحاظ حقوقی روحشون در این مسئله است که آیا در مقام جل تأثیر در مقام مقام انتصال تاثیر در مقام جل داره یعنی به عبارت دیگر در مقام جل نه مقام انتصال که دست خود مکلق در مقام جل میاد تمام حالات مکلق رو در تمام مقام جل در نظر میگیره. این یعنی وقتی گه تمام افرادی رو که است هر در خارج از صلاح تو ایجاد بکنه این تو همون سلده در نظر داره در لا تقصد و مهمی طور ولی اگر خاص نماز در داره قفصی بکنه این که همون سلده و لا تقصد نظر داره سوال اینه یا نه مقام انتصال کلن و دیگه از مقام جد بلکوی جداست همون تعبیلی که از سر مدید به کار میدونم مقام انتصال مقام سقود تکلیفه و مقام جرم مقام سبوت زدگیبه این دو مقام کاملاً جدای همه هستن رفتی به هم ندارم اون گفته نماسو کن یه او کار نداره تو قصد یوهایی قصی نظر نداره به و قصد یوهایی غسی از اون رفت قصد نکن نظر نداره قصد نکن یا تصرف درناتون با این هم با قصد اتحاد نداره با تصرف تدلایه یعنی هم به مالون و این مسلم اضافه خیدت نفسه یا به خیدت ن جوش با به نفس نمیشه تصرف، اونگه تصرف نکر. اون اصلا نظر نداره شما در تصرف تو نماز بخونید یا بخوابید یا غذا بخورید یا راه برید. اصلا به نگاه نمیکنه. اون فقط میگه تصرف در مال معذور. که کاری به شما نداره که شما در اون تصرفتون چه کاری انجام بدید. اخرش به ذهن ما میاد. مثلا عواملی متعلق و قواعی یعنی این یعنی مقام انکسار نظر نداره موضوع شبیعه طلات. هر متعلق به افراد یعنی اون یعنی وقتی با اقمه سلال توی عدم سلال همه ی حالات شما رو در نظر میگیره نخیی نماز بخونی یک تریفی در حال غرف شدن نخیی نماز بخونی نجازتی در مسجد هست نخیی نماز بخونی در داره رسیم نخیی نماز بخونی تمام این حالات رو نگاه میکنه اگر تمام این حالات رو نگاه کرد میگید مقام انتصال تأثیر گذاشت اگر نگاه ن به ذهن ما میاد که تفسیر سر و سهیدتر و اصولی این باشه که اصولا در قوانی وضع قانونگذاری و تقنیل و تشریعی شروعی اونی که متعارف بوده در طفل اسلامی میفهمیدن نظر داره اصلا الان انا میخوام نماز بخونم و نجاسه در محصول هست یک امر سله هست یک امر عدر نجاسه هست نه ما چهار بکنیم که کردن در کیفیت به این دوتا عرضایی درست شد یه قول این که امر عذر نجاسه معناش لا تو سلم این یکی که امر روشه نهی یکی دیگه قولش این بود که نه امر روشه عذر نجاسه هست معناش لا تو نیست، اصلا معناش اینه که دیگه امر دیگه نیست یعنی امر نه یعنی که نهیست اینم قول دو. با. اول سوم این بود که معنای ازل نجاسه اینه که امرش چله نیست درست که نیست مردد نه معلق به قولانی قضیه اینهیه نیست در زمانی که شما به خیلی نجاست نجاسه بکنید اما اگه اضاله نجاسه نکردیم و هست اینم رأی تلطب که مرموی ناهی قاید که از کردیم مبدع این رأی ظاهرن با شواهدی که ما داریم این شاخت به نظر ما مقصد درسته مرحوم محقق کرکیز در جامعه خاصه هم در کتاب دین این مناسبت در در کتاب دین که این امر هست اما معلقا اگر خاصید ازاله نیجات بکنید نیست چون قدرتی به جن نداری یک ولی اثر این معتقد بود چون یه بیشتر نه. اما اگر ازاله نیجات هست کنه ما حث اینا بود رای شما هر دو هستن عقل به شما میگه به اندازه نجاست مشغول ازاله بشو به لازم تشریح هر دو هست این رأی شما رو این همونیه که میگه مقام انتساب غیر از مقام تجرد خلاص جی. چون تو مقام جرد گفت ازاله نجاستم تو مقام جرد گفت سلام نقد نداره که شما در خارجی رو تو میشین نشی ما به ازاله و اصلا لازره بین جرد نیست اون اسلام داره حضر نجاته اینم اطلاع داره سر بده رفتی به هم نداره مقام جلن تمام شد با جلن شاره تمام شد این شما مبتلا شدید چون شما مبتلا شدید و عقل حکم میکنه شما سرک و بازر در اهم میکنه به تشریع نداشه پس به مقام جلی روشن شد هیچ تأثیری تو مقام تقنی تحلیل رو در کلمات آقایان ندیبینه نیامده تو جبار من با این تحقیلی که ارزمی کنم به نظر خودم خیلی محضب روشن و نتیجه خیلی واضح و خیلی تصمی گیری توش روشن میشین این طرح مسئله به تحقیلی که بنده سابتن پس یک بحث اینه اونه چون من از خیلم خب زیربنای این بحث چیه؟ مقام تشریع نظر داره نظره اونی که ممکن است استابران در مقدم واجب از تو این بحث باشه همون مسئله علت باشه. یعنی اینجوری بگیم انتصال علت غایی جعل اصلا چرا جهد میکنم داری امتصال دیگه چرا میگه در و که در و باز که من در و باز کنن لقلقه ایلسان بشی که دیگه انتصاب علت غایی جهد اگر علت غایی جهد خواهی آنهای علت غایی محسن هستیم علت غایی دیگه با اول فکر و آخر العم شما همیشه با علت غاییتونه که نحوه کار شما رو معین می‌کنه. میکنه. پس خاصی خواستیم یک صند دوستتون برای این نفر آدم متعاب و خپصل مثل اونجا ارزشن چهسان می گیره کهوا که هم شتر شخصان سال ه سال نفر دو مرس اون هدفی که شما داریم به علت قیز که تعیین میکنه عمل شما رو و تصمیمگیری شما رو. چون انتصال علت قایه. پس این انتصال نیاز تعیین میکنه. تو مقام جهل هم تأثیر میستن این ماییون که انگیس بدل لگهی برای این قوم که بگیم علت غاییست و این منشه من چون اینجا به ناقض ارز بحث رو بیجا ما در اونجا ارز کردیم بله این مطلب درسته در اینکه امتصال علت غاییست اینجای بحث نیست این نقطه بحث کجاست اون نقطه زرافت بحث چون انتصال علت غاییست خواهی نخواهی ما این طور میگیم. میگیم مغنه میاد حساب میکنه در رسیدن به انتصال راه هایی رو که هست پیل میکنه نگاه میکنه از انتصال رو. حالا فرصه یکی امتصالیست که علا کل تقدیر باید انجام بشه. و هر فرصی که شده. در این که امتصال اللده خواهی و در این که امتصال توی مقام جل تأثیر میگذاره اینجای نیست. میگه این تأثیر امتصاب تو مقام جل این است که میاد به اون حقیقت شیلی که میخواد و واقعیتش و درجه اهمیتش و تأثیرش در زندگی فردی و اجتماعی نگاه میکنه طبق همون تسلیم گیری میکنه گره اینجا جای برس نزید خیلی مهمه مثلا نکاح خیلی مهمه میاد تسلیم میکنه بگه آه هستا اگر هم بود شما وارد نشی خون مثلا دیگاه. البته چند روز از اینا خیلی راحت شده. شبهات دیگاه چون خیلی مهمه، میاد تصمیم گیری میکنه. ببین اینو ما منکر نیستیم. مقام انتظار خیلی تاثیر داره. میاد تصمیم گیری میکنه. چی میگه میگه ببین که مثلا شما که شوکه هم احتمال بود، یک در بود، یه در هزارم بود، دست به خون مردم نزنید به خون مردم به ناموس مردون. فرسوم روی این که به مال مردم نزن گیری گیری این رو تصمیم گیری میکنن تفکیم کنی این بست انتصال و تأثیر رو او جای بست میسید فرسوم آب رو میخواد بخوره آب سرد میخواد نمیگه آب بیاد یه آب سرد بیاد طبقه همون علت غاییش آب رو مغید میخواد اما یک کمی آب میخواد یک کمی مرکت کردی یک کمی مخواد پاک بانه یا سر انگوشش چردی چردی خب آب کم چون علت وجود آبارا سرد باشه، گرم باشه، ملوک باشه میخواد چای دم بکنه میگه آبا جوشی جاره یعنی طبق همون این تأثیری که واقعا داره یعنی اون که در نیت ما تصمیم گیری ما معثیره اطلاعا اون میاد جل ما طبق اون انجام بدید اینجای بحث نیست کسی در این بحث نداره یک خیلی مهمه شاهر اینیان مقدماتش هم باشه یه امر خیلی مهمه موارد احتمالشم واجبه یه امر خیلی مثلا فرض کنید شراب حالا شلم شارع میدونه که تصریح از محرمات کی در شریعت اسلامی چون بعضی از محرمات مثل خوردن خون خیلی تو جامعه اسلامی جامعه حساسه یعنی کسی به فکر خون خوردن اما شراب و این هم تاکید خلفاشون میخوره یعنی موضوعش میخوره به اسم خلیفه بود حالا بعضی از خلفاشون که خیلی هم چند دارن مثل متوکل عباسی که در اول فوتوهاد یه دوم فوتوهاد او جوزه قط میدونه مثلا متوکل عباسی تو کسی که هم خلیفه ظاهری باشه و هم مقام معنوی خلیفه باشه مقام مالا باشه مثلا امام حسیح هم قط نمیدونه اما متوکل عباسی رو قط نمیدونه خب این خود جلال سیوکی هم نمیدونه که خیلی تمسایی که به ظاهر شریعت میکرد من متوکل خلاف های جوان دنیا عباسی 26 ساله بود که خلیفش. خیلی ان در از رونا هي تو جامعه درور شراب دار. اما خودش اسراط در شراب خاری کنه نشه دستور شراب خاری حالا این که جزء قصداله اون تیر قصد میشه بهش قصد بده این قصدش اینجوریه چه حال بوده بقیه دیگه ملخ ثقاق فجرش رو بشه بکنی این چون در درجه عالی شده يا عربي در نهر ابن عربي تو قصدش این که به نظر ابن عربي تو بهونه جلال الدین در تاریخ خلفا میگه در زندگیش دو کار زشت کرد که این جریان غرض از شهدا و, و معاملهش با غرض از شهدا کردی یکم شراب خورد. وقتی که خیلی در زمان امر به معروف و شریعت پیاده‌وشو مردم مثلا شراب نخورند و طیابو مثلا به سوجور نباشه و بی اجباری نباشه. معلومه که متوکل خیلی اقامه امر به معروف و نهی از منکر جامعه اسلامیه. اما این دو تا رو نوشته این دو تا شراب شرابخوری خودش یکم و معامله ای که با رسیده شده که واقعا قابل ذکرم نیست انجام داد دقیق میفهمه اما خون نپادن حالا تعجب بینی که ما به اندازه که در ما شراب در سنت تاکید بریتون که در این محرم دیگه رسو بشید. حالا البته فرد پیدا بود که بعد خدا پای رسو میشد خیلی لاهموالی با همه تاکیدات بودن می کنه یعنی شراب جزو نوادر محرماتش مقدمات بعیدشم تمام لعنه رسول الله لعنه الله فخرده اشی قارس این از وقتی که شما اون قلمه رو تو ذهنتون چه آرزو بشه سه تا شات الکلی خیلی مقدمات تو ذهنتون ممکن داشت بیاد میره تا ممکن توبه سه تا از اون لحظه کاشتن درخت حرام ساعتی که اون شراب بخوره تصور ما در می کنه مثلا شما گوشت رو خفه کنید میگه بکنی حرامه بارش با... بارش می رو بده ولی شراب خانی نه بجای بخاطر مسائل مثلا خالصا با شجاعت علو کنه جنگ برو فورا بخاطر اردوشی از اون ترشیدن شراب نویز می‌خواد یه اسکار داشته ماده‌ای بود که بیشتر جنبه حز می‌گف میگوش شطور رو تو مقدار ما جز همین نویز حل نمی‌کنه خب راسته یه کم جنبه‌ای هست علاوه ایمی ماعصدیه جنبه حزکننده یه تغییری داشته شراب نبوده اون خونگومه قوم اومد خود بیهوش شدن. این طبعه اینو حال تصممه نه حالت مسی. اصلا بیهوش شده از شدت اون مادهی که خود بود آه شدت مادهی که تصیب داشت نبیز داره اما معلول نیست اون نبیزی که در رواست ما آمده که دوش چیز میریخدن خورما که برای فوقات ما در چه در رواست ما که نبیز به این معنا در زمان فیلمبر بود اون نبیزی که حلال بود صبح چند دونه هفش تا قرمتونون آب اونجا آب چاق بود دیگه چون مدیرن که برکنونه نداشتن زن ننداره. س جاز روخانه بزرگ نداره ه دو برابری یا مکار داره در زمین هجاز بودخونه نداره. چشمه داره اما اماخونه نداره. ضا آبشون چاق بود از چاق به آب میکسه ا شور بود شوریش رو با همه قماشیینی میکردن. هفش تا قرم تو چ میریخنشه هم بر میذان با حالته اسکار بعددی که آب کمی تمش بود داشته این نبیذ مصاورت اون زمان این بود در درجه میگوش این که حالا شرابی پیدا من تو بحث خمر توضیحش میدم در مدینه اصولا خمر انگوری نبود این اشتباهه شراب انگوری چون نمی‌کاشتن مکه شراب انگوری بود در خود مدینه شراب انگوره اون شرابی هم که بود خرمانی بود اصولا اونام چون نمی‌گاله مکه می‌کاشتن چون طائف 70 کیلومتر مکه شراب معروفی داشتن همین زمان که انگور معروف잖아 هنوزم کنه در کجا میوه های طایف معروفه در اون مسئله در خوبی و هنار داره انگور داره سیب داره در اصلا به هر حال اون وقت از اونجا لذا شراب اهل مکه انگوری بود شراب اهل مدینه خورمایی بود اصلا اصلا به احل سنت همه هم خوندن عباراتشون نوشتن که پیغمبر در رو داد اون شیک های شراب رو پاری کردن و ریشتن نصفه همه ها بود یه نصفش انگوری بود نصفش کرمماایییه کیپ برنده نصف که کهرا به انگوری داشتن در کل مدینه چون خب فاصلش دور بود چه500 کیلومتر بود که فا... فایده روتون نداشت و عه ما توصیح که خود مردم یا ستا داره نبی یعنی مالیون بعد بوده این توش میدافتن خرما بعد در رو بعد به یه حدی که شیرین بکنه حالا با دون بخش قلعا این بود این راست مقام امتصال تأثیر داره شعالش رو من بگم چون میخواد روی خند تحکیب بکنه از سه سال پیش میگه چوبه تو زمین کردی چون انگون مخصوصا با پلمه این چوبه تو زمین کردی از آن کار حرام های جاب بدی چهار سال قبلیه چوب تو زمین کردی کنار رو خونه بازن کنار این بعد انگور بشه انگورش هم بعد بکنه از الان ارتکاب حرام کرده خب واقعا مقام امثال موثره خب ببین چه کار کرد چرا خیلی همین به این مقدار شما ما خب اینو این یهییه بحث بن سر چی به دیگه نیست و از این از که طبیعت تشریح این اختزار زیاده خب بگرد بکنیم سوالی اراده فائل چی این امتزار و امتزار اراده فائل خب باشون مندک میدون ار اراده آمه خیلی به اراده فائل حساب نمی کنه عمر همینطور مقام اراده تشریح همینه. میدونه و نظر امتزارا حقیقتش اراده فائلی با اراده آمه یعنی فاعل باید کارو خودش طبق اراده آمم انجام بود اون تصابق اراده روی انتصال چرا اما فائده رو مغنم مغنم میاد بگه فرصوی اراده فائل میاد با بکنم با جلوشو بگه. من کار اراده او تاثیر میکنه اگه هست خیلی این نقوصش تمایز داره هی اصرار میکنه دقت بکنه پس من بحث امروز برای همینجر این اشتباه نشاه در این که مقام انتصال ملاقاتش ما تو مخابی جا که این کاری که جایی این کاری که جای بحث نداره که نگاه میکنه پس در مو... در خون اینطور نداره مثلا از لحظه که تو خون ریستی این حرام خون تو زرد ریستی حرام زرد رفتی خروفتی حرام این رو نگاه نمیکنه ممکن بگه سمان زن سختون میگه هر در معلی کموز زرد اما شراب رو از این که این چوب تو حرامه آب کشی حرامه، موذب بشوی حرفش کاری حرامه، انگورش چم کرد یا حرامه، انگوری که حرامه، شرابش کاری حرامه، خوردیش تختی بس. حاصل این که مقام جل و ملاقات مقام اتصال و ملاقاتی که اون میاد تو جل تاثیر میکنه. این چه بحثی؟ ما این جلب بحث نداریم. بحث یه یک ما باشیم و طبیعت جلب. نه با نبا نه با خود طبیعت جمع همینجور در باطن، کن طبیعت جمع این اختزار میکنه که تو مقام اتصال هم همراه شما باشه این سوال اینه اونی که ما منکرین اینه خود جمعی نفسه رو به طبعه چیم نداره این دو قطعه خیلی اگر گفت اضاله نجازت بکنی نمیاد همراه شما تمام مسادیق اضاله نگاه بکنه زنده نماز هم به نماز بخون حالا یه جه این داده دیگه جمع شدن همراه شما دیگه اونجا نید دقت کردیم ده اینه اگر هم ما میگیم اطلاق من این توضیح رو اعرض کردم ما چند جور اطلاقه یک معنای اطلاق من توضیح چند بار اعرض کردم یک معنا در حقیقت عباره از ادرمان خیلی همین ادرمان خیلی این اسمش اطلاقه این دیگه احتیاج مقدمات حکت نداره این مقام بیان مشا ع متعقل نباش ها لاکن قبول بکنه ننفس بکنه نکنه اصلا احتیاج مقدمات ح نداره یه معمنی اطلاق میه ا هم در خیلی از کلمات هم طلاق بیم مع همین ازقا تو م برای باات ماها بردار میوخند ب مشکل در مقام بیان از این حیسیه که اض نجاست با نماس تضاهم به لو ب میخواید ارااج یه شما این اطلاق نداره چون باید تو محام و بیان از این گرد باشه خود که این اضال نجاست با نماز همراه میشه اصلا نه این هم بکنید. اطلاق در این اصطلاح یعنی عدم و طبید. حالا اسمش بزن این اطلاق عدمی و اونو زن اطلاق لحاظی حالا اسمش شما ندارم چون این اصطلاق من ندیدم اسم مزاریش با خودتو یعنی نهیم اصطلاق من نهیم شده بر زمود ما یک اطلاقی داریم که فقط کافی است داره که عدم مقام بیان و احراض در مقام بیان و مخدماتی حتمت دیگه نمیخواد همین عدم کافی این که میگن اطلاق داره حضر نجاسه اطلاق رقم اصطلاق ما بشین این معنات اطلاق داره خیلی نهیم حاضر گفته اضاره نجاسه بکن. بله ممکن است کدش بزنی. نماز بخون مگه اینکه حق معروف بشه مگه اینکه خیر. اگه کدش فیض برسیم همین کدش نزدی سوال اینه همین که کدش نزد همین که تشخیص کرد کوک کرد کرد بسوار اوتوماتی خود تشخیص نازل به مقام انتظار است. بسوار اوتوماتی این اوتوماتیکی دریچه اوتوماتیک تشخیص مراتب سهم و اولویت مراتب سیر و و تاعارف اوقل ها ریاست کلبیعی همین میشهه؟ طقایقول ازما میگه متقاسی که هرون تقاطقاین خودش تبی میخوره. چرا چون علت قاالث انامتصار اصلا عرف این جور میخواه، سفهم و عرفی اورس عرف هم ع آمونید او روشن شدیم حدودبح روشن بشه؟ تا گفت اجل نجازه؟ این ارزش این فرده این ازاله نجاست از مرکز اون ازاله اون است یکی ازی. تا گفت صله یعنی صلاتی که تو مقبره این یه که تو شهرایی که بیاور صدایی که تو محلی بدون تو از این با ازاله نجاست این, این به تمام طبیعت قانون سوال اینه طبیعت قانون ناظر است به مقام امتثال یعنی بدون قرینه بدون هیچ صحبت خاصی فهم اغلایی این است که قانون که جعل میکنه همراه اون مطلبه چرا؟ چون هدفش امتصاله چون هدفش امتصاله همراهشه یا بگیم نه چون صحیح هدفش امتصاله لیکن این هدف تأثیر میگذاره تو بیان وقتی بیان نکرد خوب بگیمی وقتی گفت نماز بخون نگفت نماز بخون مگر نجاستی در محصول باشه اگه گفت مگر نجاستی میخواد همراهش باشه توی اینجا. اگر نگفتی که همراهیشی یعنی همراهیشی ترین به خودش کرده، نه اینکه امتصال میخواد امتصال میخواد نمازم میخواد اضاله بیرسال میخواد هر دار میخواد خوب روشه از اون بحث که ما طرح اساسی بحث این هست که آیا طبیعت تشریر خودش طبیعی پیدا میکنه آنه علت برسیه مصدر این خلاصه زمین قوید اعتراض کردن است. نمیخواد امور نمیخواد اون که خالص باشه. در باب اخلال لهازی هم رخصه نمیخواد. یعنی مصدر جمع ابووت نمیخواد. رخصه بوی کافی اشتباهشو تایید روش. اونی که اطلاق این جمع ابووت اصلا نمیخواد نه. خود ماهیت در نظر میگه. پس علاوه این من فکر میکنم تا تو حدیه روزی که که حوالی اون روزو این بحثو بشه که هدف بحث ما اینه اون بحث قانونیشه. در حقیقت اینه اگر بخوین فکرش بکنید بحث اینه اینکه امتصال تاثیر داره چه بحثی است لکن امتصال چون تاثیر داره بیان باد بکنه خوبه باید. میگه سل الا ان تكونوا هناك اجازهن در اگر بیان نکرد اگر اگر بیان نکرد به همون حکمه سوال ایجادی این روح بحث ایجاد اگر بیان نکرد خود قانون فیزات تغییر داره نمیخواد خواهد تو بیان تقیید بیاره چرا؟ چون قانون طبیعتش اینجوری است که همراه مکلف باشه البته فهم عمومی انصافن بقای اهل سنت حتی از خامم همینه یعنی وقتی میان توی مسجد میگه امر ازدن جاتر با امر ازدن خلاص اینجوری پترک می کنه. طبق این تصور میگه نده. اینجا امری نیستی مقام انتصال شورب و شلوغ است امری مطرح نیست اینه موردی مطرح نیست نه نسبت به یه هزلی نجات و عرق خلاصی داریم اصلا نصف چون نصف نمی‌مونیم اصلا اون چیزی نیست چیزی چون مقام انتصال جمع شده مقام انتصال هم در همون قرار از مقام انتصال نمی کنه مقام جنب. در اونجور بیاره اگر تقیید کرد خودش گفت لا تو سلیفه لحری سلم اما سلم و لا تقصد اون نیست این خلاصه ای بحث رو شده. به نظر ما غیر از این جرسی که هست با زیر بنایی کلیتر بحث همون تقیید مبنیست که اولوزه از اولوز خیمید رو سروزه از این نظر خود خودبندگی اینه اون مبنای اینه که ما قانون رو چیشون تفسیر بکنیم اون رابطه عبدالمولا، نظام عبدالمولا مفرح بکنیم یا نظام قانونی. حالا کارم به اشکال و انهای دیگری که مفرحی. اون دو شکل رو ایجا الان رو اگر قانون رو به نفر عبدالمولا مفرح بکنیم حقیقی نفر که در مقام انتصال هست. و این همون فهم مشهوره. گفتن در اینجا امر حضل نجاسه و سله با هم که آنوز دارن. میگه. اما اگر نظام قانونی مطرح بکویم حق با اون که میگم که مقام انجسال نظر نداره مقام امتثال مبعوث به دردی شایعتا که نظر نداره اون عقل اصلاق اطلاق داره سلم اطلاق اصلا این مقام انتصال شما تغییر درست نمی کنه اصلا مقام انجسال ما تغییر نیست تغییر واسه شما جعل میکنه نظر خود شخص بده اینه اون تحلیل نهایی نیست تحلیل نهایی اینه و اینم سرش باز به این نکته دیگهی برمیگرده نه مقام این سر سرش تحلیل ما اینه که در نظام عبدال مولا قبل به شراشر وجود بقولون آتراسر وجودش نیست مولان است و لذا به نظر ما هم تفسیر و اصول روایات و آیات بر نظام عبدال مولا روشن نیست مگر این پیش بیا یعنی باید این پیش رو ما فرض رو بکنیم که نسبت مردم با شاره نسبت عبد مولاست عبد قانونی ها نه عبد یعنی زهی عبد من مولوکن لایم دور علاشه ملک شاره هستند، عبد شاره هستند، به تراسر وجودشون ملکن اگر اینجور تصور کردیم خواهی مناسبی یعنی اون نکته رو یک نکته خارج از قانون میدونیم زمین میشدن اون نکته منشأ، اون فهم شده این چیه ملک بودن عده اما در نظام قانونی شما فرض در همین دنیا در خود ایران شما خودتون ملک مجلس ملکینده حاکم هستین حزب کمونیست اگه حاکم باشه خدمت به جمهور ملک دولت ملک نظام نمیشه که خودی ملک درست سے گویا قوانین اجرا بشه تفسیر بشه اما صحبت ملک نیست ما معتقدیم این نکته منشع تفریر بین این دوتا شده. نه اون مسئله این چون در نظام عبد و مولا عبد خودی زادن منی که مولاست. لذا خواهی نخواهی تصرفاتش محدود میشه. در همه آنات و حالات و تصرفات و خودش اون حالت مملوکیتش رو در نظر میگیره. دیدیم اون مملوکیت میاد زمین رو میکنه میگه مولا به من گفته ازر نجاز ره همون مولا به من گفته سرد الان من نمی که مولام الان, چ... الان, چ... الان چه کار کنم این که میاد تو مقام انتصال محاسبه میکنه مقام جلدون نقطه چی اینه به نظر ما اون لبن خوشت پردش گیره. لبن خوشت پردش علت غایی نیست که در تفسیر اول گفتی اون لمه پشت پردش اینه به ذهن خودمون تحلیل اجتماعی و قانونی که داریم این لمه شه خواهی نخواهی اون تمام وجودش که مولاست اون میاد این محاسبه میکنه مولا از من خواسته عدل یا از من خواسته اصله لذا فهم مشهور چی بود میگون مولا از تو خواسته عدل نجاسه دیگه فله نخواسته یک یکی دل گفتن گفت صلی چون وقتی گفت ازل گفت صلی یه شیخ نه صلی الله صله نگفتش لا صله نگفت شیخ باقری از این باقری شد حالا برتر هم دیگه لاتو نگفته خب صله نگفته صلی الله گفته باشی یا نه اون یک بحث یه بحثی شما صله نگفته پس روشن شد به ذهن ما سر تحلیل نکاتی به چی حساب کار حوزه نداره، یه نکات کلی تحمیلق قانونی نیست. به نظر ما اونی که به خییای این رسیده به کمک این رسیده و نتیج هم تبیق فهمیده و نتیجه فهمیده که به امر عضل داره امر صد نداره یا نه داره، اون در حقیقت اون زمینه بردگی و بررز بودن و ابریت او زمین رو آمده. چرا؟ چون عبد تماما به که مرموزیش کن راه عبد مملوک لایق داره علاشه پس این عبد مملوکی که لایق داره علاشه بیان هستم و صلح همین تصور آمد تو تصدیل همون تصور آمد تو به این که شما الان در اینجا عمر عذر دارید آیا امر صلح هم یا نه این چهار تا طرح آمان لا تا سلّ داریم سله نداریم سله موقتا محدودا نداریم سله هم داریم این چهار تا تر. چهار ترکی که مدبر شد این چهار ترک در حقیقت به نظر ما زیر برناها شرم می کنم تمام بحث من ده خارج هم ولی که خالصیم خوب خارج و قول سامکفای اقتراض در استفران والا که خالشتیم خوب کار میکشه. <تصفيق> اون بحث این شد. پس ریشی از بهشت ما در یکی دیگه کسی اسمش ملازمات اعلیه بوده شد. تو اون نهایی نهی در بات معاملات ماموریتی ملازمات نیستند در محله عالی کلم ملازمت همون جزء دیگر نهی و مقدمه باج و سلام شما نه اینه در عقلیه این جزء ملازمت در یک جزء ملازمت اعلیه نیست. این نهایی داری بات از ماموریتی ملازمات نیست یعنی اونا اینجور فهمیدن که نه مفاضش حرمت حرمت ملازمه داره بطلان. ما گفتیم نه نه اگر قائل بشین مل... مفاضش هر دو هم حرمت هم باطل اینجوری نیست که یکیش ابتداء مفاضش حرمت باشه حرمت ملازم با باطل تکرار کردید تعبدی حرف بندار قبول نمی‌فرمایید یا آقا آهای خوی و دیگران چین رو جزو ملازمات گرفتن اینجور معنا کردن مثلا لا تصلل بیا در ملائکه میگن مفادش حرمت و سلاسیه برماله ملازمش بطلانه سلاس ما هم که نه اصلا مفادش هم بطلانه هم حرمت با هم تلازم مفترض نیست دو تا مضمون داره اون طب تحلیل ما سوشن شد این بخیلی فکر بخیلی تکر بکنید این تحجب که شما هم بزرگان مثلا نمیشن ملازمش با این ملازم بحث نفی ملازمه نقطه پنیش اینه اونا اصطداعا مجلودش و حرمت گرفتن حرمت و ملازم بابا سلان حرمت ملازم بابا سلان یا نداره این سه اینه که جز اون ملازمات بست ما میگهیم اصلا لا خود لا دبینید؟ لا تو فقط ما تفسیرمون اینه که لا دو کار میکنه دو خونه ازداره هم زجر میکنه که اسمش حرمته هم نهش میکنه هم نهش میکنه هم نهش میکنه این هیئت که آمن لازو سله اون مادرم برمیداره این که شیفتان مادر رو بر برمیداره سه رس روشن شد اونا لازو از لازو فقط زجر رو زجر ملازمه داره با یا میانن ما ل لا لا لا, لا ای نه این نه ارزار را انجام میده هم جلو دستش میگیره هم بخواه این عمل نیست نماز نیست این لا هنرش فقط زجر نیست حقیقت لا نفیه اصلاح اصلاح لا برای نفیه اینجا چه میاد دو نفی میکنه هم جلوه کار میگیره هم میگه نیست لاسو سلده سلاح نیست اونا میگه نه لاسو سلده مفادش نیست که سلاح نیست نکن و نظام مثل ابو حنیفه نهال کرده روشین لاسو سلده فله و از قبیل سلده علا فخصر گرسه یعنی اونا همه را از یک باقی دارد از باقید باقید باقید. این درسته مطلب باطلیه صلوالات هستر یک مسئله از صلوالات و صلوالحلی حق با مشهور فوقاها و علما و اصولین سننتاً و شیعتاً قدیماً حدیثاً که مسئله اجتماع نه یه چیزه مسئله در عبادت و معاملات چیز دیگه به هر حال بلا وجودی که نظام هم میتونه این وجود رو در نه تا را این نظام قانونی و این وجود در بین بگم وجوه دیگه هم داره که مثلا نظام چه دیگه تصفیه بگه نه نمیخوام بشم بگم آنها ما این دو تصویر اساسی رو یک نظام و وحد یک نظام قانونی هم نظام قانونی بین عبد مولا چون در مطالعه قانونی مبتدی نمیکنست، مشکل کردیم. من میگم اون میکم میاد این ما را میکنه. خود مولود که آب میگیره با داشته چرا؟ چرا؟ مولان میتونه بگه اگر آب کدش اهم و مهم مقدم جدیه. تو میندازه بگی؟ نه، اهم مهم به نظر مولابست. چون میگه من عدن مملوک الله یادرا میگه که نظر به ما در ما چی میفهمه در نظام مقام میگه ما فراتر از اینکه مولانا فرادشینه این میگه نه مولانا فرادشینه این چیزی در این شعر چنان نوشته نا به ذهن کنید من معتقدم اون زمینش این بود زمینش ملکوده در کلمات اصولی سونیشی هم نگاه که همین خم هست دقت بکنی همین ارتکاض هست ارتکاض اینه در نظام قانونی ملکی نیستن همچه گفت قاعت قانون دارن ملکی نیستن مگر زمان آسود میشه هم گفت مثلا همین مرگو میشه هم و همه مملکت هم بکرد مثلا مهادن ملکی نیستن مگر نظام ناسه نیشاغازها باشه در نظام متعارف خارونی مشخصی البته الان شما ممکن است باید ما شریعت رو بر اساس ملکیت تفسیر میکنیم اون بحث دیگه اید کبراش رو هم حلط میکنم من معتقدم این که علمای اصولی اونجور حهمیدن اون نقش اون بوده نه نقش علت غایی باشه سداره احمد روش مقدر می الان معنوی میگه اهم که مقدمه تکلیفان فقط بمونه و اگر محالاً لو تبرکل من انتصال کلیه ما یه انتصال اون ها نمیگه میگه چرا چون میگه مرذور چقد اهم اون یکی از مغضوب شی چون جهل نمیتونه بکنه چون قدرت نداره تکلیف نداره میگه تکلیف میکنه آخه میگه برای جا تکلیف داره یه چیزی یهو کلی در کل بقیه تصریح میکنه مرموندانی که لو فرزنا محالا جمع از این هم, هم نواد فرم از این نجاست دید فرسولی میگه یک امتصال بیشتر نیست تصریح میکنه یعنی که امتصال بیشتر نیست میگه یک امتصال بیشتر این هنر اصلا نایزی در مسئله تحصیلی دار فقط او چی میگه میگه سلم مطلقا زائل نشد میگه سلم محدودا زائل شد محدود به ازاله نجاستا ازاله نکرن اشکال داره داخل مسجد خودت باشه اون هر جنبه دیگری کلمه که قول سواب قرار بده اینا اینو اصلا اگه شما خلال وقت نماز نگاه بکنی اینه که تازه نشون اون اول جلی روشن فکر این فکر تاریخ فکر نگاه بکنید چه این احتمال تحلیل ما اینه تحلیل قانونی شما این که اول گفتن که علت چون اتصال علت واقعی اما معتقل اون زیر بنایه اقیه عطی اقیش اینه چون عبدال مملوکم لا یقی را علا این به زمینش آمر میگه من عبد مولا تمام اون چیزو من ملی که من پایی میشنم بکنم خب اضاله سجاست مونه شده پس شاره ارزان اضاله سجاست خواسته پس شاره من بخشی که نماز نکنم چون نماز کنه که اضاله سجاست بکنم مولا ارزان این نمازه اگه فکر بکنید به ذهن ما نهاییش اینه نه اونی که تا حالا مثلا اون علت قائلان ما اون نمیشن. فقط یک وزن عرف و عرف و استظهار و این رو در و مقام ثبوت و مقام ثبوت اینجوری صحبت کردن تحلیل اون نکته اساسی رو به نظر ما نذاشتن اون تحلیل اساسی اون وقت اگر از مجموعه نصوص شریعت از قرآن و روایات استظهار کنید در اسلام نظام نظام و قانونی اون ذهنیت عبد امولای بقول ن ناصر دیشا جاری نیست که مردم برده من هستند رعیت من هستند و هیچ حق و من هرچه گفتم و باید مطلق و حتی احتمالات دنبال احتمالات اعلیازات هما مین باید بدوند اگر اینجور تفسیر نکرد نظام نظام قاینه کردیم تو این مسائل خواینهایی تأثیر فراوان داره قم مولای جامعه بزرگ این مجموعه واقدی سنتی جامعه به قانونی کرد حالا ما فعلا ما خدای نکردی به خدا مجبور همین آن چون اگه عقلن نظری عملی برای او... خدا بیان حج ما یکی برای خدا نگی بود جامعه نیست کل جامعه جامعه بزرگی کل بشریت، و در کل زمان و در کل مکان و کل فرزند دست جامعه بزرگین همه انسان ها، در همه زمان ها، در همه مکان ها همین خودشاره با تو مقام جلد در نظر گرفته اینا هرسان ها که لیمنات کافره، خاسمون نبی و یغوزیانون معناش همینه باید تو مقام جعل اینجوری جعل بکنه یعنی باید که ادراک نظری نه همه دید طبیعتاً جعل باید اینجوری باشه لذا به ذهن ما میاد که مسئله ای که در اینجا مطرحه خلاصش بکنن اون برخود که از ما از مجموعه آیات و رقایات در میاریم برخود برخود نظام نیست نه برخود نظام عبد و مولا و سال الله و محمد و حاله تارین اگه محل را